بله همانطور که در خبرهاب شنیده ایید طبقه بعضی از اظهاب نظر ها 99 درصد از اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلوییت شدن برای بهتر قرار گرفتن در این خبر همون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشافس مشکل برنامه برادر مشکل هستیم تا مشکلات ما را گشاوی کنند ب بله. در مشکل بله. چی این فرصت سلام علیکم ندارم با من گانا عزیز مشکل یعنی کشی تو بیت فرصت میدم سلام علیکم کنی مثل چی حرفی تو شروع میکنی بفرمایید سلام, علیک بفرمایی. بفرمایی. بفرمایی. سلام آمون علیکم بفرمایید سلام و علیکم همین تام شد این چه چیزی بالا بگذریم اورا این ماجرای رد صلاحیت ها چی بالا خب الحمدلله این رد صلاحیت ها فریضه ای بود که باید بواسطه هیات های نظارت شرط می که به حمدلله گرفت و نگا مش آخه این تهران گفته بود که رهبری گفته همه بیان رای بدن حتی مخالفین نظام ولی بله بله. بله حالا اصولا کسی نمونده از غیر اصولی را که بیان بهش رای بدن مردم جان ببینید البته این... کلام رهبری که بله. چراغ راه مایه و این مساله که از این اصلاح طلب ها کسی نمونده هم نمایی که دشمنان نظام و انقلاب همیشه انجام میدن سیاه نمایی چی مشکل خودت بله. بگو اصلا از این اصلاح طلب‌ها چند نفر تایید صلاحیت شدن بگو من بله عرض میکنم خدمتتون از تعداد خب خب برادر و خواهر اشلاح طلب یک ثبت نام کرده بودند الحمدلله تعداد زیادی از اونها تایید شدن مدارکش هم موجوده دیگه خب همین این چند تاشون با... تایید شدن بگویید یا تعداد عرض کردم تعداد خیلی زیادی دیگه خیلی... آقا میگم عددشو بگوی میگه تعداد زیادی عجب تعداد کسری مالق بر سی نفر تایید شدن دیگه آه خسته نباشید بلد. از سی هزار نفر سی نفر تایید کردین تا جی میگین تعداد کسیر؟ یعنی بله این... به نظر ما که سی نفر بسیار تعداد زیادیه و انشاءالله ما در سطح کشور شاهد انتخابات پروشوری خواهیم بود بله با گفتیم تو این دوره پسابرجام یکمی شما هم شل میگیدین دیگه بلد. زدین ترکون دینین بیچاره ها رو که با... بله اتفاقا همین جوره که شما میفرمایید ما به همون جوری که فرمودید چجوری بود شل بله بله همین صورت که شما گفتید عمل کردم که خب نتیجهش هم همین اینجوری شد آه این تازه شل کردتونه یا خدا خب حالا چی میشه آخرش میشه آخر وعده ما پای صندوق های رای با مردم خوب کشمت مشکل راستی رهبری گفت حتی مخالفین نظام و مخالفین خوده هم بیان رای بدن بلد. یعنی واقعا اگه کسی با این ویژگی ها بیاد تو انتخابات چرکت کنه باش کاری نداری شما نه لگه... نه بفرموده اه. ولی امر مسلمین دهان آه. منشالله تو قبل از رای دادن و در صف رای دادن و در هنگام رای دادن کاری با این افراد ندار الو بنده صدای شما رو ندارم الو الو مشکل صدای منو داری ال... الان الو بله بله الان ارتباط برقرار شد چی فرمودید شما چیز میگم که اینایی که بس. این نظام رو قبول ندارن الو این بعد از رأی دادن چی این کارشون ندارید بعد از رأی دادن ظاهرا این صدا باز هست Gallo Gott بیا متأسفم nhỉ اي بي صدا بشي لايتو مشكل بنده ندارم یعنی... الو من... ها آقا چی الو این... چی چی میگی بله آقا در زب چی نامی نام. نام فوری الو. بله ممنون باشه نامی فوری چی نامی از شورای نگهبان شورا... برادر طلا ای بابا مشکل تو که همیجی علوه علوه کن من الان بیام همیجی علوه علوه کن این چی نامی از حیات نظارتی مجلس برادر متعهد جناب آقای میکروفون طلا سهزار می رساند صلاویت شما برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس اهراز نشد الو. امزایت الله احمد جنتی از الو. طرف برادر مشکل گشه جان ای الو الو نکن hey, بینیم ما الو مشکل الو. دیگه این چی این نامه الو. باز الو الو میکنی مشکل با من اصلا سبت نام نکردم تو انتخابات که چرا رد صلاحیت شدم این چی میگی الو. بازم داره الو الو, الو میکنی الو. آمریکا. دروید بله بله مشکل میگم نامه اومده برای من چه ضد شدم من اصلا ثبت نام نکرده بودم برای انتخابات بله بله اون اونو ت... گفتم برای شما اختصاصی بزنن چون بفرمایید بزرگون همیشه پیشگیری بهتر از درمان یعنی مشکل اگه وقت اگر بعداً هم لازم شد در سوابق شما باشه دیگه داشته یعنی مشکل دشمن داشته باشه بهتر از رفیق تو بله اصلا نمیخوام ریختو تو ببینم الو اه بله الو یه کر شده لالم شده الو الو الو, الو, الو. قد کنین ما اینو قد کنین الو مرض ویروسی هم پیشگیری کرده از من اجالت هم نمید چیه آقا این نامه من نمیفهمم آقا